یه نفر دو نفر ببینید رو هم خوندید کامل آفرین بر خیلی بده ما ادعای ولایتیمون میشه ما میگیم ما محب و شیعه و چه میدونم ولایت مدار امیر هستیم اما خطوه قدیر پیغمبر رو خیلی همون نخوندیم دریای معارف نسبت به امیرالمؤمنینه پیغمبر حالا سخنران کیز پیغمبره یک سخنرانی مفصل شاید بشه گفت ترجمهش بخوایم بخونیم از روش بخونیم شاید یه ساعت طول بکشه ترجمهش رو خونی کنیم یه سخنرانی مفصل از وجود نازنین پیغمبر عظیم و اسلام بعد این سخنرانی از همه اولش حالا یه مقدار همدوسنهای الهیست معرفی خداست چون همه این معارف ما اگر پشتوانش معرفت الهی نباشه به درد نمیخوره یعنی ما اگر امیر رو دوست داشته باشیم ولی نسبت به خدا معرفتمون کم باشه خیلی قیمتی نیست چون بالاخره یه زمین میخوریم چون پشتوانه ولایت امیر ولایت اللهه ما باید اونو درستش کنیم پیغمبر توی خطبه قدیر مفصل خدا رو همدو سناش رو به میاره و معرفی میکنه خب میدانید قدیر خوچبه قدیر واقعی قدیر خوم سال آخر حیات پیغمبر بوده دیگه حجت و رو آقا انجام داده دستورات دینی نسبت به مناسک حج رو آقا اون سال تازه کامل یاد مردم داد سال دهم همه اجری آخره ماهای آخر حیات پیغمبره اونجا یاد داد بعد اومدن و داستان قدیر واقع شد چه حالا بهش میپردزیم سلام ایستادن پیغمبر با به مردم برای مردمی سخنرانی خود آقا تو مت میفرمانیم که اینجا آخرین جاییست که من بلند شدم برای شما سخنرانی میکنم خوب گوش کنید آخرین سخنرانیه عمومی من اینجاست خوب توجه کنید که چی دارم میگم خیلی مهمه بعد از همون اول بعد از اینکه خدا رو معرفی میکنه شروع میکنه راجعه امیران حرف زدن و بعد راجعه به اهل بید و به طور جدی راجعه به امام زمان سه بار یا چهار بار آقا اسم حضرت حجت رو میارن و یه جا مفصل راجب ایشون توضیح میدن ایشون چه کار میکنه چه کار میکنه آخرهای سخنرانی راجب امام زمان امام دوازده دهم، مفصل صحبت میکنن ایشون یکی از دستورات دیگه اینا رو دارم میگم که چه کار کنیم میخوایم خطبه بخانیم بخشهایی از خطبه رو میخوام براتون بخونم میخوام سخنرانی نکنم سخنرانی پیغمبر رو بخونم یک سانتی هست خطب خانی تو حرم حضرت معصومه من یه سال حضور داشتم امسال هم دیدم خبرش رو ولی متاسفان نبینم تو عربیش رو میخونن خب هم فارسی چی مخونه بفهمن چیه خیلی عالی، خیلی عالیه تو هرم حضرت معصومه مراسم میگیرن مراسم خطب خانی ولی عربی میخونه من خدا حالا عربیش هم خوبه خونه ولی مردم قرار مردم بفهمن چیه اگه مثلا عربها باشن و خب عربیشو بخونن دیگه ولی ما باید چجوری بخونیم که مردم متوجه بشن چون این سخنرانی پیغمبر دستور میده دستور میده که حاضرین به غایبین بگید پدرها به پسرهاشون اونایی که شنیدن به اونایی که نشدیدن اطلاع بدید واجبه یعنی هر کی این خطبه به دستش میرسه هم خودش باید بشنوه قبول کنه حالا فرانسهش از نمیدونیم خیلیاشو بخونیم ولی شو که شک بکنه تو این حرفایی که من زدم کافره شک بکنه انکار که هیچ اون که هیچ تو آتش سخت الهی گرفتار خواهد شد کسی که حرفای منو حرفای امروز منو تو قدیر رو منکر بشه و فرمودید که منتقل باید بکنید یعنی وظیفه شرعی ماست که هر کدوم از ماها به بچه هامون به دوستامون به رفقامون به اطرافیانمون میخواید مثلا در بیارم جلوی خورده اید. زیبا انتم یواش یواش برای, <تصفح> برای محرمم یا آماده باید بشیم حالا چون وقت دارید شما هفته بعدم شما یه جلسه قبل از محرم دارید این جلسه با امیرالمؤمنین برگزار میشه خب پس این یه وظیفه که ما موظفیم منتقل کنیم هم اصل سخنرانی رو چرا چون خیلی مهمه خیلی مهمه یه سخنرانی عادی نیست یه سخرانی همینجوری نیست که بگیم حالا یه صحبتی بوده دیگه بگیریم مفهومش رو انتقال بدیم مفهومش رو هم باید انتقال داده ها اصل ولایت رو ولی الان داستان دعوا سر همین کلماتی است که پیغمبر به کار برده یعنی ما الان مشکلی که با اهل سنت تو این موضوع داریم رو کلمات پیغمبر دعواست که ما باید این کلمات رو منتقل کنیم معلوم بشه بابا اصلا ربطی نداره این حرفی که اونا میزنن که آقا ولایت یعنی محبت اصلا شما یه دور اینو بخونید خندهتون میگیره اینا چرا انقدر نادان بازی دارن در میارن و متاسفانه متاسفانه همین چند روز گذشته یکی از های معلوم الحال مقاله نوشته همون حرفا رو چی گفته این حرفا چیه اصلا من همین حرفای... رد کرده بعدی خود اعتراضه زیاد شد ازغایی کرد این مرز وجود داره فکر نکنید که نه یارو متنبه شد متوجه اشتباه شد نه دروغ میگه غلط کرده ما هم... از پشت کونه ایمدیم که. که مثلا حالا این اومد ازغایی کرد بگیم هم الحمدالله متوجه اشتباهش شد همون فهمیده چی نوشته بخواد تست کنه بخواد بالاخره یه بررسی بکنه میتونن شروع کنن دریوری گفتن به اهل بیت رو دوباره یا نه که البته میخوان ولایت رو بزنن دیگه خب ما یه بخشای, بخشای از این خطبه رو با هم میخونیم از روش میخونم هیچ عبایم من ندارم از اینکه از روی خطبه بخونیم چون بهترین سخن است بهترین کلامه بعد از قرآن کلام نورانی پیغمبر حالا اون همدوسنهای الهی و معرفی خداوند رو حتما ملاحظه کنید تو خداشناسی مفیده چون خدا رو خیلی زیبایشو معرفی میکنه مثلا ببینید احاطه به کل شیء علمن و هو فی مکانه علم خداوند علا استقرار در مکان لا مکان خودش بر همه چیز احاطه دارن این خداشناسیست دیگه یعنی راجب همه اینا میشه کلاس گذاشت یعنی میشه که نه باید کلاس گذاشت. شما برید های اصول عقاید راجا همه اینا رو باید بحث کنید یعنی کلاس آکادمیک بشینید تخته بنویسید دفتر یادداشت بحث کنی گفتگو کنی راجع به همین علم خداوند و قهر جمیع الخلق به قدرتهی و برهانه همه خلائق را با قدرت و برهانش مقهور هیچ ساخته اینا همش معرفه معرف خداشناسیه خیلی زیباست ولی حالا باید بخون ما دیگه فرصت بار المسموکات پدید آورنده آسمان ها و ارتفاعات و داخل،, داخل مدحوات گستراننده زمین ها و مسطحات خیلی زیباست و جبار الاراضین و سماوات سامان بخش زمین ها و آسمان. جبار با این معنی که ما میگیم فرق میکنی میگیم طرف جباره مثلا آدم بدی و زرگوه این جباره این عربی به معنای جبران کننده است یعنی اصلاح کننده مثلا دوتا استخانی که شگسته به هم پیوند میده درستش میکنه اصلاحش میکنه جبران کننده است از ما... به معنای جبران ادوسع کلش این رحمته رحمتش همه اجزای آلم رو فرا گرفته و من نعليهم به نعمته خیلی مهمه توی ارتباط با خداوند این نکته خیلی مهمه که خدا با, با نعمتهای فراوانش بر ما منت داره من اینکه که نماز میخونم هیچ منتی سر خدا ندارم من اینکه روزه میام حیعت میام چه میدونم مسجد میرم نماز میخونم روزه میگیرم هیچ منتی به سر خدا ندارم بلکه او به من منت داره چون این نعمه نعمت به من داره که فرمود ظاهرم به حضرت داوود علیه السلام که باه خطاب کرده که یا داوود من رو محبوب بندگانم قرار بده. بروی یه کاری کن که مردم منو دوست بدارن. بعد ایشو سوال میکنه خب چجوری من چکار کنم که مردم شما رو دوست داشته باشن؟ میفرمايد که برو نعمت های منو به یادشون بنداز. که من ببینن چقدر نعمت بهشون دادم. خیلی مهمه ها. زندگیمون رو زیبا میکنه. اینکه من بشینم گاهی وقتا ما میشینیم نداشتهامون رو میشموریم. لذا دچار یاس میشیم دوچار ناامیدی میشیم اما اینو ندارم اینم ندارم ای بابا اینم ندارم با اینم چه ندارم ببین رفیقم اوه دیگاهو چه ماشینی سوار شده چه گوشی دستش گرفته چه نم... من ندارم خب آدم دوچار ناامیدی میشه ولی از اون برش نیمه پر لیوان، تازه نیمه هم نیست شاید از مثلا شما یه لیوان رو تقسیم برده ده کنی نه دهمش پره. اونقدر خدا به ما نعمت داده. ناحمت های ریز و درشت همین بارونی که امروز بارید یکی از نمت های خدا برای منه من من من رپتی از کاری با بقیه مردم ندارم. رپتی به کاری با چطورم کشاورزا من ندارم در واقع حالا بخوام میگار کنیم اصلا این بارون برای من باریده خورشید به من داره طوللو میکنه. ماه به خاطر من می درخشه ستاره ها به خاطر من وجود پیدا کردن. واقعا اینجوره حالا بحث ما نیست بگذاریم حالا میفرماید که ولا یخاف و رو از ستم خدا بیمی نیست چون خدا ستم نمی کنه آدم نمی ترسه از این که خدا بهش ستم کنه اقر رو له و علا نفسی بالعبودیه با همه وجودم پیغمبر میفرمند به بندگیش اقرار میکنم یعنی پیغمبر با اون عظمت میگه من اقرار میکنم که خدا خدار میپرسم و من بنده خدا هستم و اشهد الله لهو به ربوبیه و شهادت میدم که او پروردگار منه و اوعدی حالا میخوام وارد بحث بشیم ما وارد بعد از هم دو صنای الهی و معرفی خداوند وارد اصل بحث و اوعدی ما او حلا یه حذرم من الله حالا دیگه عربیشو نمیخونم و حق امانت را در انتقال وحی ادا میکنم و از کمترین تخطی و تخلفی در این امر اجتناب میکنم چرا که از نازل شدن حالا وارد میشه انگار پیغمبر با این همه تعریف و تمجید از خداوند شروع کنه میگه من حالا سال آخره دیگه سال آخره حیات پیغمبره میفرمایید من وظیفه انجام میدم ها طور نیست که من وظیفه انجام ندم و حق امانت رو چیکار میکنم؟ اون امانت وحیی که خدا به من داده ادام میکنم چرا که از نازل شدن عذابش بر خودم میترسم عذابی که هیچ کس توان دفع آن را ندارد حالا تا قبل از اون فرمود چی؟ من از جور خدا نمیترسم من از اینجا من از نزول عذابش میترسم معلوم امر امر مهم نیست که اگه من اون دستور خدا را اجرا نکنم میترسم عذاب نازل بشه بر کی؟ بر پیغمبر خاتم. خیلی مهمه ها حساسیت ایجاد میکنه. هر چند که مکارترین و سیاست مدارترین باشد هیچی نمیتونه فراد کنه لا اله الا خداوند به من اعلام کرد که اگر مطلبی را که اینک به من وحی فرموده به شما نرسانم رسالتش را اساسا انجام ندادم و خدا به من قول داد که منو حفاظت بکنه که خداوند کفایت کننده هست و کریمه این آیر نازل شده به من پیغمبر میفهمند بسم الله الرحمن الرحیم یا هر الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک و ایلم تفعل فما بلغت رسالته یه موضوع اینقدر مهمه خدا به پیغمبرش دستور میده که این کارو انجام بده اگه انجام ندی 23 سال زحمت تو هیچه هیچه ببینید موضوع خیلی مهمه یعنی 23 سال پیغمبر فقط دوران پیغمبریش بوده این هم عذاب کشیده 40 سال هم بلاخره وظایف کارای خودش انجام میداده کارایی که بالاخره رسول نبوده ولی خب بنده خدا که بوده خدا میفرماید تا اگر این دستورو من اجرا نکنی انگار هیچ کاری که من به تو گفتم انجام ندادی رسالت من رو انجام ندادی و اللهو یعصه مکملن آیه سور مایده آیه 67 تو پرانتز یه نکته خیلی مهم. به همش نمیرسیم رسیم بخشایشو میگیم. پیغمبر تو این سخنرانی به هیچ عنوان نمیگه آی مؤمنین، آی مسلمونا، یا ایوهن ناس میگه، من آشرن یعنی خطابشون جهانیست. تو قرآن هم همین جوریه. تو قرآن یه سری دستورات هست با عنوان یا ایوهن لذین آمنوست. این مخصوص مؤمنینه. یه ده خطابا خطاب مسلموناست دایرش بزرگ تره. یه ده خطابا با ناسه آی مردم این گسترده است دیگه رفتی به دینشون نداره یه سری عمومی است. یعنی مسیحی و یهودی و زرتشتی و بودایی و بدپرست و غیر بدپرست همه رو شامل میشه ناس هم مردم آی مردم پیغمبر تو تمام این سخرانی با خطاب یا معاشرن ناس و مثل این با مردم صحبت میکنن نمیگن ها که این خطاب خطاب جهانی است حالا جلو معلوم میشه که ولایت امیر و اهل بیت که آخر این سخنرانی که پیغمبر بیعت میگیره که بیعت اولش هم شعاری است پیغمبر میفرماد تعداد شما خیلی زیاده طبق حالا قول معروف 120000 هزار نفر کمتر بیشتر تو همین حوله شما تعدادتون زیاده نمیشه دونه دونه دست بدیم که بیعت کنیم این کلماتی که من میگم شما تکرار کنید دست جمعی شعار بدید شعارهایی که من میگم رو تکرار کنید این میشه بیعت شما و خدا اونجا نشون پیغمبر میفرما میگه البته خدا صدای دونه دونه شما رو میشنوه متوجه از کی گفت کی نگفت که بعد البته دو سه روز بعد میشینن با حوصله بیشتری بیعت حالا دستی هم انجام میشه با دست بیعت میکنند پس خطاب پیغمبر تو جریان ولایت یک خطاب عمومی است برای تمام مردمه ولایت امیرالمؤمنین منحصر به شیعیان نیست امامت امیرالممنین منحصر به شیعیان نیست امیرالمؤمنین امام همه است چه شیعه چه غیر شیعه چه مسلمان چه غیر مسلمان بعد اینجا پیغمبر می که مردم من کوتاهی نکردم من وظیفم انجام دادم من اه... کم نذاشتم حالا به تعبیر خودمون من کم نذاشتم از وظایفم همانا جبریل سه بار بر من نازل شد با سلام پروردگار که خود این سلام و این فرمانش که در این مکان بایستم جریانش رو فکر میکنم یه دوره ما خدمت شما همین موضوع رو گفتیم که چه اتفاق افتاد بعد از حج قربانی انجام شد پیغمبر تو مکه وحی نازل شد آیات ابتدایی سوره انکبود دستور صادر شد که امیر المؤمنین رو رسما نسب کن بیعت بگی واسه که 24 ساعت خلوت کردن و آیشو متوجه شد و بالاخره لو رفت و جریان ترور پیغمبر و اینها سه بار بر من نازل شد که همینجا وایسا همینجا یعنی پیغمبر داشت تلاش میگرد خودشو برسون مدینه که تو مدینه ابلاغ کنه. بلع تعمیرالمونو وای نازل شد که همین جای که فردا اولین جایی که وایسادی باید همونجا اعلام بکنی که قدیر بود قدیر خودمون اینجا رو نگاه کنیم که چیکار کنم در این مکان بییستم که چیکار کنم و به همه شما از سفید و سیاه اعلام کنم که همان علی ابن ابی طالب وصی و خلیفتی وصی من و خلیفه منه ول امام و من بعدی اول بسم الله وسیع خلیفه و امام حالا شما ببینید آقایون میگن دوستی کجاش در خلیفه رو چیکار میخواید بکنید وسیع رو میخواید چیکار کنید امام رو میخواید چیکار کنید همین اول اول اولش یعنی اینطور هم نبوده که پیغمبر بشینه حالا مقدم چینی بکنه دیدید دیگه همدو سنه الهی معرفی خدا خدا به من دستور داده چی کار کنم که بگم علی وسیع منه خلیفه منه امام بعد از منه اینا تعابیری نیست که مثل تازه اون و... حالا ولی بله یکی از معانیش دوستی هست ولی اینا رو دیگه چیکارش میخواید بکنیم نسبت جایگاه و به من نسبت جایگاه هارون به موساست با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست چون حضرت هارون پیامبر بود هو ولی یکم بعد الله و رسوله اون امام شماست ولی شماست صاحب اختیار شماست بعد از خدا و رسول مگه اگر معنای دوستی مراد باشه مگه مردم غیر از خدا و رسول دوست دیگه ای نداشتن آه دوستی که محدود نیست یه تقصیح خدا دوستشون نیست با خدا دوست نیستن اینجا بحث سرپرستی است بحث صاحب اختیاری است بحث حکومته بع سالا بعد چند آیه می خونن در فضائل امیرالمومنین که خدا در این باب آیه ای رو نازل کرده انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاه و یاتون الزکات و هم را که اون سوره آیه 5 که خدا ولی رو معرفی میکنه صاحب اختیاران رو معرفی میکنه که یک خدا دو رسول خدا سه اون مؤمنینی که نماز خوندن و در حال نماز رو زکات دادن در حال روکو زکات دادن که این جریان همه میگن یعنی همه اهل سنت رو هم اینو قبول دارن که این آیه اولین بار که نازل شد بعد از اون جریانی بود که امیرالمومنین تو مسجد داشت نماز میخوند یه فقیری اومد تو درخواست کرد هیچ کمکش نکرد امیرالمؤمنین انگشتر رو در حالی که تو رکوع بود بهش داد همه اینو دیدن بعد این آیه نازل شد که به عنوان ولی سرپرست معرفیش کرد که بعد البته اون آقایون دیگه سرمایی کن آقا به معنی چیزش میگم هم آقا. جنسیتیش در مقابل خانوم اون آقایون بعضیشون مکرر میومدن این کار میکرد سرنسازی میکرد و سرمایی که قرار میذاشد من دارم نماز بکنم شب بیا تو رو... مثلا چیز کنه یه هدیه بهش میداد تو روکو که این آیه نازل بشه که نمیشه خب خدا خدا که دیگه کسر خدا که کلا نمیره ولی دیگه ولی همه قبول دارن که این آیه راجع به امیرالمومنین نازل شد و اینجا پیغمبر داره تفسیر میکنه خود پیغمبره صاحب رسالته صاحب قرآنه میگه این آیه و این علی ابن ابی طالب است توضیح داد خدا و رسول که معلومه خدا که خداست رسولش هم که خود پیغمبره حالا اون الذین آمنو و, و این علی ابن عبی طالب که اقام از نماز به پا داشت و زکات داد و حوبر را که در حالی که رو در حالی چون زکات معنای عمومی داره دیگه شامل صدقه هم میشه شامل خمس هم میشه شامل اون زکات مستلقی که مثلا گندم و جو و این چیزا تعلق میگه شامل اون هم میشه بعد اینجا پیغمبر میگه که اعلام میکنه یه از بریل خواستم که از خدا بخواد که منو معاف کنه از این مسئولیت. من نگرانم متقین کمن منافقین زیادن مسخره کننده ها خیلین و اینجوری یه خورده آقا گلایه میکنه و یکی از حرفایی که منافقین بر ضد پیغمبر میزدند و پیغمبر اذیت میکردن میگفتن این گوشه خود پیغمبر میگه که این به خاطرین که من با علی نیست خیلی معنوس بودم. اینا به من میگفتن همش گوشش به دهن علیه بعد خدا جوابشون رو داد و اینها بعد میفرمایید که من اگه بخوام الان میتونم اسم منافقین رو ببرم بخوام با انگشت میتونم نشونشون بدم بخوام با نسب و حسب معرفیشون میکنم ولی به خدا قسم من راجب اینها با کرامت دارم برخورد میکنم با کرامت چون تو ج... جریان قبل از رسیدن به قدیر خم گفتیم که این منافقین 34 نفر بودن اسمشون مشخصه وجود داره کی کی کی کی وجود دارن اینا تو گردن عقبه نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن که حوزیفه همراه پیغمبر بود دل شب بود دیگه تو تاریکی اونا رو لبه ساده بودن بالاخره به خواست خداون نقشه عملی نشد پیغمبر چهره اینها رو به حذیفه نشون داد به اذن خدا نوری تو آسمان روشن شد حوزیفه میگه من دونه دونه اینها رو دیدم که فلانی فلانی فلانی فلانی البته تو این 3 نفر سومی نیست بعدن به اینها ملحق میشه ولی اون مرتیکه مرتیکه بگیم چی بگیم اصلا آدم نمیدونه چی بهشون بگه همون بگید جریان حکمیت رو به نفع امرو آس تمام کرد نه با اون قاضیه ابو موسا ابو موسا هم توش بوده این نکتر حواستون باشه بعضی ها بخوام بگن ابو موسا یه آدم ابلهی بوده کلا سرش رفت که تو فیلم امامالی هم همینجوری نشونش میده در حالی که بابای ابو موسا تو نقشه ترور پیغمبر شرکت داشته برای این که چی؟ برای اینکه پیغمبر زنده نمانه که ولایت امیرال محنین اعلام بکنه اینجور نبوده که آدم مثلا کودن و نادانی باشه از کلا سرش رفت این از اول جز همون منافقین درج یک بود حالا دیگه برخور فیلم سازه هم همون چی رو درست در دیگه خراب میشه و با این همه خدا از من راضی نمی مگر آن چه بر من نازل کرده به شما منتقل کنم بعد این آیه یا آیه هر رسول خوندن پیغمبر پس بدانید ای مردمان ای گروه مردمان فعلم و معاشرن ناس که خدا او را ولی و امام شما قرار داده قد نسبه هولکم خدا این نصب نسب کرده به عنوان ولی و امام رفیق که نسب کردن نمیخواد که رفاقت دیگه دستوری نمیشه رفاقت که اینو خدا رفیق شما نصب کرده نه اصلا معانی میبینی خنده تو میگیره که این حرفا رو بعضی از متصوفانه شیعیان هم شیعان فریب خورده این حرفا رو میزن اطاعتش را بر همگان واجب ساخته اهم از ما حاجر انصال رفیق که اطاعت نداره که رفاقتی ما هم حال می‌کنیم دیگه پیغانون فهمد اطاعتش بر همه واجب شده هم بر مهاجر انصار هم بر تابعین هم بر شهری و بیابانی هم بر حاضر و قائب هم بر عجب و عرم عرب ببینید به همه هم بر آزاد و بنده هم بر کوچک و بزرگ هم بر سفید و سیاه هم بر تمام موهدان و یک تا پرستان و این شامل همه میشه حکمش لازم الاجراس، کلامش مجازه، فرمانش نافذه، ملعون من خالفه، هرکی با علی مخالفت کنه ملعونه، از رحمت خدا بدوره، مرحوم من طبعه. هر کی علی رو طبعیت کنه مورد رحمت خدا واقع میشه، مؤمنون من صدقه، هرکی علی رو تصدیل کنه مؤمنه که خدا گناه او رو میبخشه، معاشر الناس اینجا آخرین جایی است که من وایسلام گفتم براتون. اینجا آخرین جایی است که من وایسلام دارم در مقابل شما سخنرانی می‌کنم. پس بشنوید و اطاعت کنید و تسلیم امر پروردگارتان باشید که خدا رب شماست، ولی شماست، الای شماست. بعد از اون پیامبر من ولی شماام که در مقابل شما ایستادم دارم با شما حرف میزنم بعد از من علی ولی شماست و امام شماست به دستور خداوند و الایام بعد از علی هم زوریه من از فرزندان علی تا قیامت امام شما یعنی چهارده محسوم رو حالا اینجا اسم چهارده محسوم رو نمیاره ولی تو رباطه دیگه هست که پیغمبر غیر از اینجا اسم دونه دونه اسم میاره که علی بعد حسن بعد حسین بعد کمی جری تا امام زمان اسم چهارده نفر رو آورده از عزیزان من تو, تو دیگه توی یه بحث جدی گاه قادر دیدید دیدی یه میزنن مقام حضرت علی اکبر سلام خدا بر باد خیلی بالاست خیلی بالاست حال بعضی دیدید میگن که اگر علی اکبر میشد شد امامش با مگه چی میگن ارث بوده که مثلا حالا علی اکبر اگه زنده میمون به اون تعیین شده نصف الهیست از اول معلوم بوده که امام بعد از امام حسین حضرت سجاد علیه سلامه نه این که اگر او زنده ماند بله لیاقتش رو داشته ها این یه حرف دیگه هست لیاقتش خیلی بالا بوده ولی امام حضرت سجاد بوده که یعنی حضرت سجاد افضل و برتر و بهتر از همه بوده تو اون زمان چون امام بهترین بوده این کلمات رو ببینید ببینید یه سری کلمات ما به کار میدنیم راجع برم اینجا پیغمبر به کار برده ما از پیغمبر یاد گرفتیم من هم تمام آنچه آموخته میگه خود، مردم آی مردم خدا اون چی که شما فکرشو بکنید به من یاد داده ای همه یه مردم دانشی نیست مگر که خداوند به من باز سپرده هر چی علم تو عالمه خدا به من یاد داده و من هم تمام آنچه آموخته و اندوخته به علی منتقل کردم که چیست امام المتقین علی امام المتقین یعنی لقب پیغمبر به امیر داده مثلا ماها شیعیان و ایشون یا همچین لقبی درست نکنیم از پیغمبره و هیچ علمی در عالم نیست که من به علی امام المبین آموزش دادم بعد 1 نکته دوباره تو پرانتز بگیم خیلی توی طولانیش نکنیم این که می‌فرماید هیچ علمی توی عالم نیست من به علی خدا به من یاد داد و من به علی یاد دادم این شامل همه علوم میشه ها این شامل همه علوم میشه فکر نکنید مثلا مثلا ما امروز کامپیوتر رایانه خوب بلدیم مثلا برنامه نویسی میکنیم چه میکنیم امیرالمومنین سر در نمیاره یه خورده چون امام شناسمون ضعیفه این حرف ممکنه بهمون به سنگین باشه اهل تو زمان خودشون به زبان‌های مختلف مسلط بودن میتونستن صحبت کنن حرف می‌زدن می... هم مکالمه میکردن دیگه به زبان‌های مختلف بعضیش از فارسی مثلا تو روایت ما هست یه جا مثلا امام صادق علیه السلام یا امیرالمومنین فکر می‌کنم شک... شک از منه بالاخره از اهل فارسی مثلا یه جمله ای رو به کار برده از ممکن نه یا به کلمات مثلا رومی آقا صحبت کرده یا به زبان های متنوعی که هست یا حتی تو کلماتی مثلا از امیرالمؤمنین هست که میفهم اونجایی که به مردم نادان و کچفهم فهمم اصلا آدم اذیت میشه بعد آرزو میکنه که خوب شد ما اون موقع نبودیم از یه جهتی نکنه ما هم جزو اون نادان ها بودیم اوم میفرماید که سلونی قبلان تفقدونی از من بپرسید قبلی اینکه من از دست بدید طرف نادان میگه آقا چقدر چن تا تار موتون سرم است؟ میگم آقا من می به چه درنت میخوره شما از راه های آسمان از من بپرسید من به راه های آسمان از راه های زمین آشناترم یعنی چی؟ الان تو کسایی که تو علم فضا نوردی و چه هوا و فضا تحصیل میکنن اینو میتونن متوجه بشن راههای آسمان یعنی چی؟ تا های زمین یا از پک میکنم از امیر علی علیه سلام باشه که میفرماید اگر میذاشتن حالا قریب به مضمون دارم عرض میکنم اگر میذاشتن ما کار کنیم از این آب برای شما روشنایی ایجاد میکردیم الان ما این کار رو میکنیم دیگه ما از آب برق تولید میکنیم درسته؟ خب نمیفرمیدن اگه این بیوشدان ها میذاشتن که ما کار رو بکنیم از این آب برای شما روشنایی تولید میکردن از امام حسین هست شما بتون کتاب مجموع کلمات امام حسین های سلام اولش آب کلمات آب و اینا اشاره میکنه به موجودات ریز داخل آب موجودات زندهی که الان برای شما میفهمیمشون با چشم غیر مسلح میشه دیدشون ولی اون موقع نمیشه دید خب ریز دیگه دیده نمیشه ریز مثلا با چشم مسلح دیده نمیشه آقا می که تو آب یه همچی موجوداتی زندگی میکنن و چیزهای مختلف از علم حالا مثلا علم قریب و اینها که بماند الان خیلی متداول نیست بین ما ها که اصل اینها از اهل بیت بوده علم شیمی مثلا از اهل بیت بوده و چیزهای مختلف که باید معرفت اون افزایش بدیم اگر معرفت اون افزایش ندیم رفقا اگه من خیلی افسرتم بله خیلی افسر بقیه‌اش رو خودتون بخونید و من جمله رو هم بگم حساب وقت پیشی الله اکبر اگر نخوندید وجدان داشته باشید وجدان داشته باشید تا قبل از محرم حتما اینو بخونید ترجمهش رو ترجمهش حالا اگر دوستان حیات صلاح دونستن بخرن مثلا این ترجمه های خیلی خوب دادید به بچه ها ب... نصلا هدیه بهشون بدید بچه ها ب... بخونید اصلا به خاطر جایزه نه به خاطر افزایش معرفت چون اگر معرفتتون نسبت به امیر المون افزایش بدید درجه اول پیدا کنید اون وقت لیاقت پیدا می کنید درجه دوم معرفت پیدا کنید درجه دوم معرفت نسبت به امیرل پیدا کنید اون وقت لیاقت پیدا می کنید و ظرفیت پیدا می کنید که درجه سوم از معرفت امیرلمونی به شما بدم او وقت همین جوری شما ادامه بدید لیاقت و ظرفیت پیدا می کنید که معرفت به نورانیت امیرل پیدا کنید سلمان و ابوذر نشاستوران با هم صحبت می‌کردن دو تا شیعه شیعه شیعه واقعی هم مثل من عرفی کلامی اسمی شناسامی ای دو تا شیعه واقعی ابوذر و سلمان ابوذر از سلمان سوال میکنه شما معرفت به نورانیت امیرالمومنین میدونید چیه خودمونیش دارم میگم هم. سلمان میگه که نه باشو بریم از خود آقا بپرس دو تایی دو تا دو تا عالی ها دوتا عالی پا میشن میرم خونه همیرر معمین که کهاممیر نیست دارن نم کردن می رفتیم نیستن آقا منتظر نشازیم آقا برگشتن جایی رفته بودن آقا سلام عله کردیم بعد پر... یه چیزی که تو این روایت هست آدم کیف میکنه ادب این دو تاست نسبت به امیرل ادب آقا باششو صحبت کنه جانم فداتون به شما می برمونینلب که یا اممیرا آقا بفرمایید همین تو مکالمه شونا امیر میاد سلام علیکو کاری داشتی چی شده اومدین اینجا آقا اومدید یه همچی سوالی داری امیر هرمانین اون وقت حرف میزنه یه حرفایی میزنه که یه جاهایش آدم دچار مشکل میشه آقا دو جا میفرماید کسی که شک بکنه دراجبی یه حرفایی که من زدم کافره شک بکنه حتی یجامیرالمومین فهماد اگر نیاکنی توقف توقف کردن در مسائل فکری به این معناست که مثلا شما یه خبری به من میدن من توقف میکنم به این معنا که نه قبول میکنم نه رد میکنم ببین میگن نفیان و اثباتا ما هیچی نمیگیم نه قبول میکنیم نه رد میکنیم ببین میگن توقف کردن یه جاهای خوبه یه جای احتیاط کردن خوبه احتیاطه مثلا به یه مال شوپناکی برمیخورید آقا استفاده نکنید یه حرفی مثلا راجب قیبت راجب بزرگان میگن یه حرف منفی از یه بزرگی به شما رسید شما نه اینو قبول نه به این آدم مثلا بگی آقا تو درومی یه آدم بزرگی هم داره نمی کنید نه ترتیب اثر بدید طبق. حالا میرم میگه راجب این فضائلی که گفتم اگر کسی توقف هم بکنه کافره ظرفیت ولی میخواد میگه میشه یه حرفار همجوری هر جایی زن ظرفیت یک تو اون من یه بار یه حدیث رو میخونم، ورود پیدا که بحث علوم اهل بیت رو اونجا مطرح می‌کنه امیرالمومنین احادیث ای رو تو این باب دیدم یه حدیث دیگه دیدم از امیرالمومنین دوباره که اون موقع سلمان هست ابوذر هست امام حسن و امام حسین علیه السلام مثلا یک دو تا دیگه از این خصوصیان بودن حالا اسم‌هاشو میارنم اونجا امیرالمومنین یه سری حرفای ای می‌زنه و یه کارایی میکنه. آدم میرسه به اون یه بیت که میگه نه اون نه اون یک دیگه میگن میگن که آنا کعلیک را فلان چیزش به کنار عجب خدایی تا و اینا خطرناک میشه یعنی ظرفیت کامل نباشه سرریز میشه شما فکر کنید توی ظرف مثلا توی استکان کوچیک بخون یه دریا آب بریزن مونفجر میشه یعنی کافر میشه داغون شده دیگه پس باید این ظرفیت رو افزایش داد و این زر... افزایش ظرفیت هم با افزایش معرفت گام به گامه البته از طریق عشق و محبت اهل بیت میشه این ظرفیت رو آسانسوریه افزایش داد دیگه لازمیست تبقه به طبقه بدید بالا یه ها با آسانسور شما رو بازم با این آسانسور های پیشرفته خوبی که مثلا توی ابنیان برج میلا چند ثانیه می بالا میگن یعنی این همه طبقه رو خیلی با سرعت زیاد میبره میشه اینجوری از طریق این توسلات خالصانه میشه به معارف عالی دست پیدا کرد خدا انشالله به حق امیر به ما معرفت روزافزون نسبت به خودشون و اولاد تارینشون انایت بفرماید به برکت سلوات بر محمد و آل محمد سلام الله عليها